نسوا واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خفتم ألا لا في اليتاما فانكحوا ما طاب من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثنا وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعذل فواقدة أو ما ملكت أيمنكم، ذلك أدناه ألا تعولوا وآت النساء صدقاتهن نفله. فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَيْنٌ شَيْئًا مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُهُ هَلِيَ أَمْمَرِيَاءَ. صلّى الله على الشّهداء والذّي يسّن لله الرّحمن الرحيم سورة مباركة نسخها و نوید و دو غلوم سوره هست و در ترتیب قضای چهاروی هست در گفت شد ایا و ایا کنستعین و در گفت گویا لا نعبد کما والمشركون ولا نعبد على إمران كما أبدا نشغر والمشركون فكترى إبادة ميكولين وهقوق رحم هم أدام ميكولين لغضغسل حقوق الزنامرا هذا كردين ربنا أنزل علينا مائدة إنعانك وإحصانك سفره انعام و احسان را بر ما نازق بفرمه این هم از نظر نام ربط این سوره به ماکر قبلن هم ارز کردم این روز تکراش از نظر معنا در سوره بکره و در سوره آل امران چهار مطمئن اصافی بدانه تویید و رسالت جهاد و انفاق در سوره بکره امور انتظامیه و امور مسلحه هم بیان شدن نماز و روزه و حد انها امور مسلحه بودن امور انتظامیه هم بیان شد در سوره آل امران امور انتظامیه بیان نشد هونی که نتن مسلمان هارا یا لغانون و مغررات را امور انتظامیه میدید که مسلمان ها با نتن و با ترتیب و با اتفاق و انتهاد زندگی کنن خاپ جهاد کنن و رسالت را تعید کنن و توحید الهی اله را در, در دنیا فخش کنن در طوره ایسا امور انتظامیه بیان میشه لیکن مسئله توحید و امر مسلحم از قبیل هم, هم مختصرا بیان میشه مسئله توحید نیا در ترمیان خب امور انتظامیه دو نه هستن یک امور انتظامیه که مربوط به راییت اون امور انتظامیه هم بیان میکنند قسمت سخانی امور سلطانی یعنی حاکم امور هستن که تعلق حکم دارن اونها باید حاکم اجرات کنه رای اجرات کنه اول حدودی که و قوانینی که مربوط به رعیت هستند الله تعالی بیانش می کنه باز اون قوانینی را بیان می کند که مربوط به حکامم مربوط به رائیان قبل از همه دستور تقوا داد که در آخر سوره آل امران هم فرمود وقت الله در تمام مراحل زندگی شما از خدا بترسی حدود مقررات الهی را نکنی، شما کامیاب میشی، لالا کم تولیم. اکنون هم در ابتدای سر دستور تقوى، بدر امن دور ابتکورم دارم، بدر ترجیح کنی از آپارما نیست. چرا دستور تقوى باربار داده دا شده، دا بدون خوف خدا؟ انسان هیچ قانونی از قوانین الهی را نمیتونه راید اون خوب خدا از پولیس که با انسان همراه. هست اون ویستان و اعتقاد هست نسبت به که انسان را حدود و مغررات انسان را نمی که انسان از حدود الهی از قوانین الهی از مغررات الهی کند و نقص کند چرا اللہ ذاتی هست که همیشه با انسان همراه هست اگر اگر نه خدا نباشد این انسان خیلی متمرد و سرکش میشه بین خاطر اللہ تعالی دستور خوف خودش را میده مضموم اول تکبیر منزل و دوم سیاست مدنی در تکبیر منزل سی هست و اتحاد اصلاح ما اصلاح ازواج الله سبحانه و تعالی شوبه اول از منزل اتحاد و خمه است که نکنید شما از یک پدر اما این دیگر تا خطاز نکنید یا ایوها الناس اتکو ربکم ای مردم بکر فی از فروردگار تا فروردگاری که خلککم شما را بوجود آورده اونا من نفس رواهده تین از یک نفس این مختبی اتراد است شما یک فدری از یک نفسی وخلق منها و پیدا کرد از آن نفس واحد جفت آن را و بخش کرد از این نفس واحد و جفتش رجالان کثیرا مردان زیادی را و نساء کثیرا و زنان هم زیادی را الله سبحانه و تعالی خلق کرد واتقوا الله بتاریخ خدا بله این تاکید برای این اتتقوا الله اول اون خدایی که تسائلو نبیه شما نام او را میان میاری و از این دیگر سآل میکنون سبحان الله مقتدی اتحاد را الله اللہ تعالی بیان میکنه شما نام او را میان میاری و از این دیگر سآل میکنون به خاطر خدا به خاطر خدا و دیگر والارحام به تذکیل از خدا و از قطع اهمی که همیشه شخص شاوندی را انسان ما ترا میکنه و خطای قدرت ما ترا میکنه تو حسابنده منی, تو بسرعموی منی تو خواهر زاده و برادر و عموی منی من نمی من از تو توقور که تو بر من جواب میکنی دل میکنی حالا انسان خطای مالی قدرت و خطاهای دیگه قهرمانی قدرت بیشتر به حسابندار نظر میکنه. و اگر از حسابندار مهر و محبت نبینه بیشتر گله میکنه. جفائی که انسانت سیشاوان دیبینات اون جفا بیشتر انسان گلاهی سیشاوان دیرمی که جفائی مالی باشا جفائی لیر مالی باشا و از کتر رحمی هم بتعصید اتک اللہ و الارحام کتر رحمی سر و نگرامی گناہ ایسیار این از رحمت گرفتر رحمی و اگنام آئی الہی مشتخص شده. سید اگر کتی این را وصل نکند خدای از دو جل این قطع رهمی بصورت نیعه دو خدا شکایت میکند کسی منه غد کرده تو را غد کن والله سبحانه و تعالی میگه بس مرحبه بیتون به تحسیل خدایی که بخواه بواسطه اون نام خدا شما ازید فرط آل و ارحام و از قطع رهمی یانہ یعنی برخورد غیر مساحت نہ فرمائی ان علتیں ان اللہ عقوب تکبار حجاب دیدی خوف خدا نہ اس خدا بھی دی فرماتا از اسونجا کہ ان اللہ کان علی کوم رقیبا اللہ تعالی پر شمار دیبے مراغبے شما تحت مراقبہ شدید خدا قرار تھا اگر دست افتہ چشمت گوش و زبان خطا کردید اللہ تعالی خبر دارد. شما از خدا شما اگر در خلوتی تو فکر میکنید کسی شما را نمیبیند، جلوی مردم روزه هستید و سر میل میکنید اگر خدا را الله اللہ اگر شما ظاهرا به استلا جلوی اتشابندان اس محبت کردید و دو اس اصطلاح بے استلاح ششوندی و پشت سر خیانت کردید خدا نہیں به هر حال از خدا بترسید که اللہ تعالی هم نکا و دلیل خوف خدا که خدا بر شما رقیب ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا دوم تدبیر منزل اصلاح مولا استاد بار بیتیمها خصوصا مال بگید این قانون قبل حکم قبل مال بیتیمها را نه نخورید و به آنها بدهید این رأیتیه آثار یتاما اموال هم بهره بیتیمها مال آنها بیتیمون بچهای نیکلت از شریعت که بسته به بلوغات نرسد و پنر شویم دخترها بیتاما اموال را بدهی باکتر یتامه بدین بغیر یتامه ندی نباردید به هر صاحب حرد شرابیدی حرج مالی شرابیدی خصوصا خوردن مال یتیم بسیار معمول بود درمیان انسان آبان آن هم هست مال یتیمه ها انسان با فراخ دل بخورد بین خاطر الله تعالی در این شعب دوم تدویر منزل اسرائه مال حکم اول مال یتیمه ها را نکنید آتو یتامه چرا خوردن مالی یتیم برای شما اون مالی یتیم خویش هست و مال خود شما طیب هست یبینید یک صورت خوردن مالی یتیم این بود که مال خوبی یتیم را برای خود بردا و مال غیر طیب را برای اون بخزار اللہ تعالی میگه مالی یتیم برای شما خویش دید و مال طیب و حلال خود تا خوبی یا تیم خوبی یتیم را بردار مالین خراب را رویش عوض خوبی یتیم را برای خودت بردار و بودی خود را برای خودت بگذار ما اوقر نکنی و لا تتبتر الخبيثا عوض نکنی خبیث را بتهیه که مال یتیم برای شما خبیثه و مال خودش شما طیبه حالا شما عوض میکنیم. شما چکر کردید؟ کبی سره بتایید حالاست ولا تأکلو خب صورت دیگر یک صورت خردن مالی یتیم این بود چما را خوبی یتیم را مثلا مغازه خوبی یتیم را کماویت سجاریش خوبه شما با یک مغازه خودتان چماوی خوبی یتیم نمی داند شما عوض کنی. اون مغازه برای خود شخص نام کنید و برای بچه های کنید و مغازه او و که موقعیت شروع نیست از شما برای او بگذارید ای ای این مغازه شروع یه چی میدانتی چاره کدوم مالی یکی درم بوده و کدوم مالی یکی امویم بوده امو ها قموما این طوری جبا بی خاطر الله تعالی صورت اول خوردن که خیلی مرمولانه است اینه که تعریف میکنه و این ما ب مال خوبی یتیم را که در موقع خوب هستن می با مال های غیر موقعیت اگر شید کنند و اگر عجیب خانه دو سرند مال قدرت همو خوردن فروغ کردن یک صورت مرموزان خوردن اینه تبدیل می خدا برموز خبی سر به تاییر تبدیل نسید صورت دومین مال یتیم را با مال خودش خاطی کرد و می خوردن این هم خدا زمطلق تاکلو اموال الى اموالكم یعنی ما اموال همرا با مال خود غاطی کردن این دو صورت خردن مالیتین بسیار مرموزانه بود الله سبحانه و تعالی صلاحةً بیانفرد ایک صورت امینی که اینطور انسان ببین مالیتین اینکون مال ملکونه اینه کانه بلو کبیرا بدرستی این خردن مالیتین گناه بسیار یار بزرگی هست در دین و در آخرت شما لیشما ضرردارات حمومه یکیمها دختر اموها مورد علاقه نیستند برای این مال این دختر اموها را محیب کنند به این خاطر اینها را نکاح می کردند بهشون محرم نمیدادم دادند بهشون حتما شد به خاطر خوردن می رقبت نداشتند کہ ان یتیم اموال زادے خود را نکاح کنن ولی ها تا حقوق ذرا ادا این بخاطر اینکه مال اشتراک خوردن مال قدرت اشتراک خوردن تنها نکاحی سردر نکاح نکاح تو بی خاطر الله سبحانه و تعالی در این حکم دوم فرمود و ان خفتم الله تخشی اگر شما احساس کردی که با نکاح دخترانی یہ شما عدالت را رعایت ننی کنی شما عدالت نمی به آنها حق سوجی كما حقهو نمی دید، ما نمی دید. عدد بخاطر اینه که مالش اگر احساس کردید تو شما عدالت نمی توالید کنید با نکاح دخترانیتی که شد تحت تک شما هستن. تو لذا حکمت که پلاتتن که موندن. نکاح نکنید جزای این شرط است. همه که تو جزوان ایشتید. اگر احساس کردید که عدالت با آن آن آن آره و آره نمی کنید با نکاح آنها را نکاح کنید حق و حوض آنها را نمی کنید محر بدئید حق زوجید آنها آره را بدئید تو فلا تن کی ہو هنہ این جزا مکدره شما نکاح نکانید آنها آن را بلکه فن کی ہو ماتاو لکن من الیسا نکاح کنید اون زنانی را انماد مانی مرخز اون زنانی جب کار برده ماکی برای غیر زبین اکولیز اکی معنی من را کتاب تاب لکم تاب لکم انا حلالا برای شما یا تاب لکم برای شما خوش می خورن شما نارا پسند دارید من النساء از زنان بیان ماهد یعنی غیر عذیتی ماهد زنان مورد پسند خود را نکاکن در حالی که دود و باشن ودر هالکی ثلاثه سی سے باشر سی سی باشر ربا چهار باشر یعنی انجابی که اللہ سبحانه و تعالی دستور زنان متعدد بک مثنان ثلاثه این زنان مورد پسند خود نقاع بني. ها فإن اگر شما گمان کردی که اللہ تعایدنی شما نمیتونی عدالت را در دیان این زنان برقرار کنید در امور واجب, واجب و اختیاریه خب اموری که واجبه بیش نفره بیدید بیش نباک بیدید مصابید بیش محکن بیدید مصابید بی این امور که واجبه و اختیاریه لباک شه هم نو دادن محکن امنو دادن و از خدمت شما لباس و محکن و خوراک اینها امور واجبه هست سی چیزن از که به گردن مرد واجبه هم. اگر شما نمی توانید لباس بدید مصابی خوراک بدید مصابی محکن بدید اینها اختیاریه. هست هم وعجباً هم اختیاری ہے چیئے انسان تحنید نمیتونید کہ لباسی کنو بخارے خوراکی کنو بخارے مسکنی نه وقت شادن اگر شما احساس میکنید کنید فا ان خبتوں کہ اللہ تعدلو تو پواہدتاً این واہدتاً محکول بھیئی ہے فرنش راضو پختار واہدتا اختیار کرو دیت زند را کہ انجا دیگر مشاباتی هر لباسی دادی، هر قرآن کی دادی، بگتی مچرائی انجنگ، خود در امور غیر اختیاری کے اللہ سبحان و تعالی ان ثبیت بشریه اگر یہ تمایل پیدا می کنید اشترائش پیدا, پیدا میشه، شے تو اللہ تعالی لازم نہ کر دے از ان امور اختیاری نوبت شب گزاریه یک شب اگر انجامی اشترائی چاہے بگر دیدے اون هم شب گذاریه روز کچو روز امرار مآسی نمیشه که مصابی روز در تخصیم بکنه بی این مانا که محل کارش تر جائه و محل شغلش تر جائه اون روز در باید بره دنبال کار، شب در آنجا بره که دیگه تغیر کنه تخصیم در این مورد خب اگر احساس کردید گمان کردید که شما نمی توانید عدالت را برقرار کنید بین زنان متعدد بین دو زن بین سه زن بین, بین چهار زن تو استیار کنید یکی را اگر این و هم نتوانید که او یک زن هر را ادا کنید ما ملکت ایمان و تم اون کنیدی را که ایمان شما مالک. خو خب کنید مال دیگره شما می توانی کنیز در نکاح به بے مالکش خوب بے اجازہ مالکش کے وقت نکاح کردی شما, شما, شما, شما در از شما خوراک نمی او از شما مزکن نمی خواد تو ار شما لباس نمی خواد چون در خدمت مالکش است این چیزها تک کردن اون مالکشتاں شما فقط هرکه همون ارزای تریت را می‌تونید، اون هم بخورته. در زمان شری روزی ساعتی که شما موقعیت گیره ور دید، تو همون مکهول عربیه، کوارت عربیه، اتاق عربی زبرته، تا از کار خود را انجام می‌دهم. به این خاطر، دال کن، این نکاهی یک یا یک کنیس. ادنا اللہ تعالیو خیلی نزدیکی که شما ظلم نکنی حالا یک نت پیرا شما اجاره کنی برای دو سال یا زن سیزت کنی برای چار پن سال برای یک ماہ او شما ہیچی نمی خواهد کول قرآن مطرح نکن جو شما زنان متعدد رہا کنی دو تاس خطاب تا. و اگر حساس کردید چه عدالت نمی توانی بیر زنان کنید در حقوق واضبه و اختیاریات تو فنسوما بواحده تن اختیار کنید یک زنی را او ما ملکت این دیگر تماثل اگر یک زنی هر را باستم لباس می خواهد مسکر می خواهد غزا می خواهد و خلاصه دیگر آبو حقوق و همریشی می خواهد اگر کنید نتوانیدی ما ملکت ایمانکم نقاط کنید کنیدی را که ایمان شما مالکم یعنی اگر کنیز مال خود انسان از این نکاحی نمیخواد این کنیز مالک سالی بیگران، مسلمان، مسلمانان لحظا شما اون کنیز را با اذن مالکش نکاح میتونید از شما هیچی نمیخواد غیر از همون که شما قریز را از اونی تالی برناو در خدمت مالک است مدینش، لباسش، براغش بگردن مالک است ولی غذا شما یک حقی داری در قسمت نفسش اون هم هر زمانی کی موقعیت کی را آخر شبیه آخر روزی موقع فراغت ختمت آغایش شما میتوانی درد اشتفادت کی ذالک ادناء اللہ تاوجود این نقاہی کنیز یعنی نقاہی زن خیلی نفسی که شما ظلم لکن لحظا اگر از آسمی بود کسی غکوین اللہ تعالیم کسی غکوین از ہم آسان تک مدت را تائم کنید و بعد از مدت بگه هیچی ورده تنید هم طلاقی میخواهد اددهی میخواهد میراسی میخواهد حضرت بی میره میراسی می از شما و اون نه او زنه آریت الفرج یا زنه متعید چیل اونجا یک دلیل برای حرمت متغالب ہے۔ حکم شفو خب زنانی کہ مورد پسند نظر نگاه کنی یہ بیمار نکانا کنی کہ پسند نداری داری تو خاطر مال شو نکانا کنی در نکاح فقط مال مطلوب نی و مال اونا را به دست بیاری زنان مورد پسند را از دوتا گرفت تا یہ کیو تا ماملکت ایمانو کن اجازه داری نکاح کنی لیکن این زنان مورد پسند را همکی نکاح کردی فقط استفادت کنی دو حق محر ندی نه. این کار آتون آتو نسان صدقات این نهلتا برحید به زنان محر آنها را اکتیو خاطر آسان نسال صدقاته نه نهلتن و نه اتبیب خاطی با فراحی دن با نه با پشار نقابه ونم زنی نیازمنده و شوهرمنم که نیازندم به زنی دو محتاد واقعا احتیاجشم برطرف میشه دیگه من چرا بهش حق بدم تو باید و من حق نه اللہ تعالی میگه تو بخاطر که شوهری لہذا تو باید نفقد دی تو باید محرورا اتبیب خاطر دی از امروز باطیا محنه های غالی میگوزارن و اصلا نیتی برداخمه دارن. این هم مصرمه. یک چقریه از آنزم و خدای دستور اکید داده که ازنانی که مورد پسند شما شدند و نکاح کردید حقوق آنها ردید. آتون نسات آتون نسات سادو نهله تا خا در اختیار زنان گذاشتیم هر آناره حالا یک زنی اسلام کرد و شما پس باشی. اشون جدی بخورید هم بالا شد بخوری مغز خوردن لطفی باری دنیا ما نشینه و هم وقتی از ما ناراحت نباشی. یکی میاد بیشیم خراب نشه سیاحت ماشین بساطه آن انسان موقع خوردن لخت نیب از خوردنش، لکه موقع هر دیگه مریض میشه، مخنوم میشه. الله تعالی میگه وقت شما به اون زنان دادید و فهم تب اگر بخشیدن دن احیی بخاطر اون زنان برای شما مقداری از آن مهریا همراه آتی به خاطرشون تبنا من از تبنا. اگر به خاطر برای شما چیزی از آن تو بکلوه. اشته اتا خوردن آتاای زن خود را خوردن لعذرت میده. مریعا خوشگوار باشه دیگه موقع حضمش ناراحت نباشه یعنی تن مریعا این معنی قداره خوش بالعذت و خوشگوار یعنی موقع حضم هم خاصو میشه خراب نشه یعنی بالعذت و باتی به خاطر شما هم بخوریم این حکم چهارون چند جزد داره جزد دا اولینه خوبیتی موقع تعدد کپول شما هستن نہ تنید نہ شما این مال را نرم می گزاری او او زیر دم خراب این او تو لا تقتو شفه ها این حبت جهارو ماهز جوت اولینه که بشفه ها یعنی بون بچه های کمعال نادان اموال خود را مره یعنی اموال را مذاب کرده ترت اولیا این فور و مأمال برادرزاده در حقیقت مال شمائی خرده این بزرگ میشه اگر مال رشت وبره اون برداری گردی امو جان بزرگ این مال برادر ای ای توه مال برادر زادہ مال آب مال توه تو الان ای تو ای. تو امیدی این ای مال را ای تو افتاده و تو کی شکار کنه پول ندار. برادر بزرگ مریزه زیب کل ندارد. الله تعالا دختران را بتو رحمت اموال خم. برندی مراد اموال همونیه که مادری بذ دیگه بر خاطر رحمت و رحمت که شما با مال رحمت داشته باشید محترم جانبی دق جنا دانات هر جی جنا ایک بچے نادان شما میلیون اپول میں گزارید ان ہر ہر روز حق میں کولا و بار ذات کے برسول علیہ السلام نہ دیکھی بے ثقہ اموال کان را یا یعنی مالائے ان بارہ کہ خدا به شما نشود داد اون اموالی اِلَّا جَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا خرار داده اللہ تعالی برای ان اموال سبب زندگی شما انها سبب زندگی شما دو را در اختیار این نادانها کم خوب از سن بلوغ با این طرف احمل اغلش برکمه یکی رفته به زن بلوغ آنه این ایچ نمیرد نداره صرفون برمال نداره رحم نداره شما معاشین را به دسته امیدی و گاز میده و, میدی و او میزنه خود رحم هم نکنه میتونه معاشین را هم نکنه میتونه ایتون فا اگر محجب آتر نیدیه بعد از دین بلوغت از دا دا دا دا سال سال بعد، او ترامون برمان دارد قابل از بکینیست که درستاند که از پانزا سال اکثر که این اغل شمک کرد شبه چه حوشیانی و قریبه هم کتاران خود را نقصد تیره هم کتاران پلیپی در ماغل همه از دست امیدی البته اللہ سبحانه و تعالی میگه مار در اختیار آنها نگذارید لیکی خرد شنگیدی ورفقوهم که فی آئی مینفا از این مال آخ خرد شنگیدی وقتوهم لباس کنم بگیدی وقولو لهم قولا معروفا و قول معروفا خن درای آنها بگیدی اولاً چین مال را بیانا تحقیز نیکنیم؟ جوزه اول دوپوم رسک بی این مال آن خرجی بی دید بیانا دوپوم لباس بی دید بیانا و چارم تیجید برانتا قول محروف قول تسلیبات چون مال مال شمالات چون کمی بزرگ شدیتی گا تسات مکرم مال بدر منی، برادر بزرگ من نمیتی این ابو به من نمیده عمو به من نمیده کل معروف به شوری برادر این مال شما من, من خدمت میکنم تا که مال شما سلام نواز تجارت میکنم کشاورزی میکنم روزانه شما را صفر نمی کنم جو کاو قدیمیش میکنم این حرفهای رضایت بخش را بش بکن و بگید برای اون یکی شما قول معروف قول تسلی بخش او وقتی میخواید بیدید امتحانم کنید و ابطالو در این حقوق جهارم اعضای مختلفی هست هر امر و هر نهی خوک نشود یک جدی این حقوقه امتحان کنید یه تیم آماده حتی اگه بلکه نکات اینکه به نکات رسید امتحانشون امتحان امتحان امتحان خلاص مطالب کشانی شما مخضاری کوچه دستی اخبارش هر ما قاض نبود مخضاری شما مام الله حالا مراقبت کنی چیکار میکنی؟ پارچه ها مراقبت کنی، دسته ها را مراقبت کنی، مقداری پارچه میذاری، میذاری دو بگذاری، بدونی دیگه شغل متره چند تاهاه؟ هایی میکروشم، میکویی میکروشم، حالا بروید و بگذارید برود و بروید و بیاید شغل کردی، شغل شما ملک کردی بله، این هم می؟ آباد کنم، بلند بودم متر کنه، سعی کردم ارقام حالا جرانت کیخ؟ او به هر حال خوشحال میشه این جرانت نده. امتحانی که مطابق شان آنها، فکر کرده امتحان کنید یکی ما هر، اگر بلغون نکار، تا کی به نکار برسند بیش نگوید. اگر شما معلوم کردید دا دانه ها رشد معنی دانایی دان دان شلاق. احساس دانائی ایدان حق کردید و فکر کردید که این غدگ دانان حیفو میں نمی کنا. ماشاءاللہ بچه افغان از دا سرچنا بلد معمولانا که سرسد نطور حمی کردن. هرچی بیجی پریب نمی کنید. وقتل یتاما حتی اذا غلغ النکاح تا اینکه در اتن نکاح از وقتی حساب کردید شما ازانها دانائی تو ششومی این حکم جوز ششومش فکر ویلیهم اموالهم دفت کنید که مال مالانها بابا برادر کچکی بزرگ شدید برادر زادا, زادا این مال شما دیکن باست شما ماذا دانها تحویل می دید گواهم بگیرید رکن این حکم این طوره برادر احساس من اتصف برادر اتصف برادر اتصف بزرق بزرق می کنے که برادر کچھ بزرگ می شے و می از ترزان از و ازدوستان, ازدوستان و ازدوستان و ازدوستان و مال رمتاگی رشیدن پوری پوری مغزار می خورے شدیدی که همارمی برمان بی سسیدی اللہ تعالی می گئے ایک شیوی یکی یکیم شما دارت بزرگ می شے شما ازل ازل کنی و ازان آم مبادرت بگیری و اصلاف کنی جنو ترسمہت بگیری مال آن آرابی خلیدی کارنن کنی ولا تاكلوا شما نا تريد مال يميت در حالی که اسراف کننده باشی یعنی بیشتر از ضرورت شما شما خدمت کردید بیشتر از خدمت خود اسرافاً مالا نهارا و وبدارا مبادر نباشید قبل از حاجت بخرید این اسرافاً و بدارا هر دو حالاً در حال که شما اصراف کنید از حد ضرورت بالاتر شما از مالیتی محاوط و تی مولوان تیر بیشترا خدمت خود یا مبادرت کنید از بزرگی آنها بداراً ایت برین از خوف بزرگی آنها که تفریز اموال آنها لازم می شود یا ازا مبادرت کنید از بزرگی آنها از بلوغت آنها و از زو خورید خلاف در نکردید آنن خوبیل بزرگی آنها کی ایک سال دیگر دو سال دیگر مال رسابیل میدیدی بیانا شما مبادرت کنید بید از بزرگی آنها این کار رحم لکنید و اطنون اگر ضرورت دارید شما دا چون در خدمت مالیتی بید و ضرورت دارید کی بخورید دیگر کش شما دا ندارید رمید اونها را سرپرستی می کنید میک یا دیگانی آنها را می کنید یا کشاریت جانت ام اموال آنها را می شما ضرورت دارید اندازه ضرورت بکنید شبت می یتین مغازداری می کنید بلائی یتین در آن مواظه بشاگر دعا و مغازدار حد شکلت می داشت مهم قد می کنید و من کان غنید کسی که از اولیاء یتین حنید هست تو پلیستا کاملا او اتفرد کنن یعنی اجتناب دکنن نکنه مجانی برای یتیم خدمت کنه کشواب دارد و من قاند فکیرا اگر سرپرست و اولیای یتیم خودش فقیره دیگر دیگر راه کسبی ندارد به کشاوندی یتیم مشغوله به دانداری یتیم مشغوله به تجارتی یتیم مشغوله و خودش فقیره دیگر کشف و خار چیزی خودش ندارد تو فریا کل پس بخورد این ولی یکی به معروف به اندازه ضرورت و عرف عرف چه آدمی اگر رمای این رو به جلانی چرا طبابت میتونه بخوره حسابر و میکنه چطور ممکن میتونه صرفی رو یکی حسابر کی میکنه یکی حسابر میکنه و اگر مغازداری میکنه برای یتیم تجارت میکنه به معمول و معروف به پره کو وقتی که بعد از وجود شرایط که یکیم به شد و شما هم دانائی از انها احساس کردی می مال دانها تحویل بیدی در این صورت جواهم بگیری بیاری دیگر ای شواندان را هم سایهارا که این مال پدرشون بوده منی تا زفرت بشیده او غزو انها حوالا میکنم فیضا دفعتم الی این بعد از وجود شرائع وقتی شما دف کردید بکردی یکیمها اموال آنها را نو تا شهیدو ارائه این جواهر بگیرید، این جزء نهوم این حکم چهارم هست. جواهر بگیرید در سرمان آرام، این امرم ام استعابیه. البته برای جستن حساب کپای الله هستی با، کپای الله خدا خودش کافیه. اسم آقا گر در ارائه تیماها حقوق آنها را عیب کردی یا نکردی حساب خدا خداشون دیگر کسی نیز کباب اللہ ہے حساب و حکم نو حکم کسی خلا و کچک باشد یتیمه بزرگ باشد یتیمه در افتراح شریه خلا پدران این حق موردن خب بزرگها بزرگن کچکها کچکن دکترن، خلاجن، معمورن معذورن خلا تقسیم میراث، روی ذکورت و روی خنوست خانم بزرگ و کوچه در ذکریت و خونسط فرقی ندارد اون بچه یک ماه و یک شبه بعد از صدر قیدا شده یا بعد از صدر متولد شده با اون پرزند بزرگ اگر دختریه با دخترهای بزرگ و اگر دختریه با دخترهای بزرگ سهنشون در آمده پس ریت و کورت انصت ہے لے رجال نصیبو مما تر قل والدین بل اقربو والدین رفتن دو یکی لہذا به فکر ہم سامی تعلق بیجیرت یا اذن که ترکه گزارت اقربون حسابندگان دیگر برادری وقت خاہری رفتگی کا چه ندارا دھمی خار ہے کچھ کہ ہمیں برادر کچھی کرے نہ حصہ و خصوصا لنکا برای مادها انسانی ہے ازان چکی والدان مگزارن رخیش و اندار خب کل من ہو او کسر این من ہو فائل برای انکل ازان معلقائی کم باشند آنها او کسر یادیان ملیون آمی گزارن یا یک سب چمینی مگزارن در یک سطو باریه 10000 ریال بشه در حساب ایران هم رجال هم هم نسبت هم دارن باسن این حالا لطفا بیان میکنند اینجا فقط قانون اینه که از ترقی والدین یا ترقی اقربون هم زنان سهم دارن هم مردان اید. ایدی. سهم دارن قانون اینه اینکه که سرا نیرا فقط سهم مردانه یا فقط سهم زنان باشه مردان را ندی که مردها بزرگ شدن فلان فلان نه آنچه که مال والدین می گزارن یا خشواندان می گزارن بینها از آنها میراس مبرن اون مال را در اصطلاح شریعت مناسبت ما ترك الوالدان و الاقربون اون مال را میگن ترکه. چی میگن؟ ترکه؟ اول اول از این تركات صاحب ترکه تركا. که میراث گذاشته متوفا اول اول تدفیل و تجهیزم <سؤال> او را برای کمر آماده کرد بشروفت و کپن کرد و نماز دنازه خاند و اگر آخون بدون کل نماز دنازه نمی کل بدید دن نماز دنازه بخاند بوردن و همچنین بگردن دپنی کل شهرداری و قبر کبرزن و کبرزنه هاره و اینه هاره میگن تدفیل و اول اول از این چیزه هره که ترک مال بعد دیگر نوبت به دیون می رسد دین که این بایی اگر تمام مالش در بلابر دین رفت بکنه برای این شریعت کرده بعد از ادای دیون متوفا اگر کرده وصیت اورت کی اگر وصیت کلانی کرده و مالش ایجاب نمی کنه از یک سیب وصیت اورت می مثلا وسیعت کرده یک میلیون بیدی همه یک میلیون مانده از یک تکمیل مال یک میلیون کرده بیدی. در راه خدا یک از یک ما باقی مانده دیگر بین رجال و نسا تحسین میشه شد خدا قانونی بیان کرد چرا این قانون را بیان کرد که عرب ها به زنان میراث نمی دادن زنان حق میراث ندارند نمی دارن اگر که این خاطر این ظلم را الان هم انجام می با موجودی دیگه ادعای اسلام و قرآن به دخترهای بیچار کوشکو به زنان هیچ سهمی نمی دن بخواهر ها سهم نمی به دخترها سهم نمیده حاجی آقا مرده دخترش میچنن ندر باساش سهمی دارد و در مغازه سهمی دارد و در غناب سهمی دارد و نه در بوم سهمی دارد هیچ چیزی به دخترش نمیده دختر مثل یک یا دور نگاه می کند مال قدر را برادرها تو جیب و و اگر برادرم که بزرگ باشه بودند برادرهای کوچی ترسند نگاه هم اما مال رمیزه نیتویچی بو فما اشرا بی کنه اونید کنه اللہ تعالی میگه نه لرجال نسیب مما ترك الوالدان و الاکلمون ولنسای نسیب مما ترك الوالدان و الاکلمون مما کلمنه ازان مالا ای کم باسر لانا اوکر سور ای ازیاد باشر خلاصا نسیبا مفروضا سهمه ای فرض شده طرف خدا متعال. این حالا اصحاب فروض میگه یک سرید خامه هر ولی متوقفه مشخصه آره مرا میگن زلیل فروز بعضی اصلا زلیل ارحام بعضی حالا مجبا که می توزی می دیم خلاصا نفیب هست اون نفیب مفرد شده از خدا و اهلا ردار از این حکمش شم هست خب کسانی هستن که میراد نمیبرن مثلا متوفا والده دارد حرزن دارد خواهر و براده میراث میراد نمیبرن متوفا پر احمد او دارد برادر خوهر مختصف و نعتوان که در و مادر هم دارد بچه هم دارد خوستین احمد خود میکنه فقط بچه های او و والدین او و سوشات او, او میراسیدن سمدار به برادر و خواهرش میراسی تعلق نمیگیره خب این خواهر و این برادر در زندگی احمد خیلی رب تو آمد داشتند و برد و خرد داشتند اول میرن شما یک چیزی برای خوردن و برای مصرف رو بیدید از این با دیگر بیچه را برادر و خوهر آمدن و لگا بکنه سمه ایچی ندی سب سهم نداره خدا بشمه سهم نداره خب مره قرده را بیدی بیچه را برادر اللہ سبحانه و تعالی میگه این احتان را بکنی و ایزا هذر الکس مرد بس که حاضر سودان بی مال قول قربا آن رشت داره آئی که میراث ننی برند یتاما آمدن خالش و میراد را تسکیم حالا یتیم، من کدشون مرده برادرشون مرده، یتیم شدند. حالا نه از مال تخصیم نشده، قبل از تقسیم برای خوردن، قبل از تخصیم برای خوردن، یا ما ساکین بیگری آمدهاند، وارث آمر السریبا، باع مال حضرت احمد مرده. خلا یکیم ها بچه کچکش هم آمدن برادر و خواهرش هم آمدن که میراست نمیبره اونا قلول خوربه هستن یک دامات خوب میراست میبره انو تکریم نشده مساکین بیگری هم آمدن تو فرزکو کو میرون به آلیا گفته می شود ببینید برای خوردن به یکیم هم بیدید بخوره به اون برادر و خواهر هم بیدید بخوره برای خوردن بیدید و قولو لهم قولم معروفا یا مراد از یکامه یکیمه های دیگه یکیم این متوفا نیست خب برای او قول معروف تسلیبهش جمال تطهیم میشه بشمه حق میرسه و به برادر و خوهر ما چه کار به شریعت حق نداده در موجودگی پرزنده های متوفا و والدین به قاهر و برادر حق نمیرسه نمی نمیرسه قول لهم قولن معروفا همینه و اکنون اللہ تعالی در بخش یکیبها وجدان اولیاها را میخواهد متوجه کنند اے اولیا یکیبها اے برادر بزرگ اے همو اگر تو میمردی و بچهای کوچیکی کچکی میگذاشتی تو چی توقعی داشتید یه نخبت و تو برادرها هموها برادرزادها بچه های بزرگ چی چه تواقویی داشتی؟ الان که تو بزرگی و برادرهای کچک زیر دست تو حکتا الان که تو بزرگی و امودادهای کچکی و برادرزادهای کچک زیر دست ستو حکتا تو تراقوم کن فمان قرآن همی که تو تواقو داشتی که با بچه آید تو بشوار وجدان انسان را وجدان و اولیاء یتیم را اللہ تعالی نکان متواردی کنم ولی به ترسلانهایی که ترپرستیتیمها هستن اگر خودشان میگذاشتن پشت سر خود زرریتان غعافن بچه های کوچک کچک کچک و کو ریف تو خاکو علیه چقدر احساس میکردن برای بچه های کچک کو خودشان بری الله الان که پدران بچه های کوچک رفته و شما ترپرست بچه های کچکی و مال پدر آنها که مال برادر شما بازد در اختیار شما هست همون جان خالیت خدا خودت هست ایزا رسانیه پیلی نکنی بلی اقول و قولان و برای این برادر زادرهای کوچک خودت هم سخنه نرم بودی تو پدر آنها باش. اگر به جای پدر آنها تو می مردی و بچه های کچکی تو چقدر احساس میکردی که بر بچه تو دو ترکون بیشه چقدر توقعوی نیکی از برادر داشتی الان که برادرت مرده و بچه های برادر تحت تا اپولت رو اصلت رو برانی در آخر این قانون که میراث هم مردان میبرن هم زنان میبرن تکسیل میراث روی سکورت و اونوزت از بزرگی و کوچکی نیست اگر زدر ذکر می کند بعد از این که رجدان اولیاءی اتامهارا متوجه کرد که باید اولیاء احساس کنند که اگر نامی مردند و بچه هایشون می ماندند چقدر احساس خوف برای بچه ها خود داشتند احساس خطر داشتند الان باید اونها خوب مراقب باشند که قدرین این بچه های کچه برادر زاده برادرش مرده و برادرزاده هستن برانها ترخون کنند بلا اکنون تحبید بی کن خدا و جب اجتان را متواجه کردن آیت بده این آیت تحبیده ان آئیت مالیتیم آرامی قرآن چه مرادر بزرگی، چه خواهر بزرگی، چه مهموه چه کسی بیگر ایت مالیتیم را می قرآن آخون ما آخون دیمیان مالیتیم آرامی قرآن برای جماعی و برای اول شام و برای حفتم و برای جلو گشتان دی یتیم بیشاره دا می توسن آغا ها و آخونده ها جم بیشن او مال یتیم می خورن گبره ما چه لون ما ششمائی گریبتیم و سال گریبتیم چه آخون بی خورے چه سرپرستی یتیم بی خورے کسی دیگر بی خورے اللہ تعالی میکی آتش جہنم دیگایت کی خازی آغای نی میرے می آرن از غمه آتی آقا می و می دن مردم گوشت و بلا و برند و جمعه هست و امروز حفتمه و امروز چلومه و امروز اربعین تو تینیه مال, کی مال کی مالی کی که مالی که رو در اربعین تو تینیه مالی یتیمه ملطوی و جهنمه که تنیه کنیه در چلومه متوفا که مالی یتیمه ها رو این آتش جهنم است. به هر شکلی چرا این و, و خدمت شما یه این شده ما نمیدن با چلومی دا. یک چلومی بگردن نانها انداخت یک یک دهومی این ای امروز اربعین حضرت هست مال حضرت را تصمیم کردیدون بردیدون استعمال دکترات را شدور جدار کردیدنا این گستند و غاب و این فراغ و بلینج را بشمدرست میتونید در عربین حضرت از مال از مال حضرت و مال حضرت با موردن دیگه تمام شد فرقش در تصمیم و بود در عضای بیونش بود در عضای توثیہ اس اگر توثیہ کرده اگر نہ کرتے حضرت نہ ا رہے بڑا یہ حق تو مبارائے شام اور سامنے لے کے میگیرن مجلس درحین میگیرن وہ پھول یہ را حرام ہے درست چرا این وسیعت نامشکی باید دو اگر وسیعت کرده دو نیشه جب قرآن اگر شما دیدی دید. تابنم که اگر یکی وسیعت نامشکی کار، شما در مطلب صحیح خارج کن. اگر وثیت کرده که او لمنبریت درست کنیش شما من جاید سینمای درست کنیم ادتره از از از از این میدید و بگید لخدا را معاف کن بی خاطرین و از این حوابش بگید اگر بخته وثیت که من احمیلتی بپورا و مساکین بگید خب از وثیت او بپورا و مساکین و بارم خب اگر گفتید درودی از مال من برای من خرج کنید در آن مواردی که شریعت گفته خرج کنه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علیها والعلماء بولان صدقات گفته خرج کنید درست خب صدقات هم که مال فقرا مساکین و عاملین علیها و العلماء و در این موارد باشه بس یتیم همین تنها اگر مسیحیت کرد که از مال من خانس کنی نه برای زیدار نه برای رسمی که در رسم شواب نیست خسیطور تکنیل کن بجاییم که چلون بکنن پنجاهم بگن یا سی و پنجاهم بگن چلون خبتون اینها رسمن که ما خایم کردیم این رسمها از پیغمبر علیه الصلاة والسلام از صحابه از مشتهیبین کرام انها قائد نیدن خوکهائی وقت تصریح کردن که انها بدأت تمام خوکهائی احنافی مثلا تصریح کردن خوکهائی شوافت تصریح کردن که انها راستان بین بودن و هم وقت حید در دین بودن ولی حضا از پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرسوم نیست خود بطور رسم نیدن سمین طور بیدن تو بغرا بیدن و مساجد صرف اگر تو کرده ده میلیون شما به مسجد مکی روی سمچنید واسیت تو همینه ده میلیون بیدی, بیدی, بیدی فلان ده میلیون فلان ده میلیون مسجد تو تو همینه را تکمیل پران. لیکن در تاریخ های رحمینه اگر وہ لیکن صدقات تعالی برای صدقات وقت همین تایین اما خرابید ورنه همین طور اگر کسی قغارا را می آره در خانه خودش وقت تایین نمی کنه و چیزی می ده که قغارا و مساکین و طلا بخت میکنه می بره یا میره در خانه باقت تا تایین نمی کنه او هیچ تیبی نداره جایز ناسه هر دمانی مگی وقت اشکر تا خود تعین کردن که ما تم رسم را احیاء کردن این رسمها خاره خراب نکنه ورنه مدرس صدقات و قیرات برای اموات شواب کن خوشکه بدن بپسند و بدن یک تکبوش دید که لوگوش رد و تغییره بدن وقال بشون باشد که خدا ثواب این رب متوفای من پر اسلام به مادر من پر اسلام به قدر من پر اسلام دارد در خانه خود بقرار دعوت میکنه میده وقال بشین بین او و بین خدای بحث شایید این که ما میگیم چلون عربین ما میگیم هفتون این را به ما اختلاف شدن کردیم این اختلاعات رو وقتی وقت هر زمان میستن شد شب، روز، جمعه، غیر جمعه این در خدا بید رنگه که خم امروز سقیل میخواد پنج ندی که پرداد جمعه میدید اینه که خدا نگو در راه خدا هر زمانی هر وقتی هر شبی که خدا به انسان داد ایسال ثواب کنه تقریبا نوی اعتقاد دارن که ایسال ثواب مالی و میت میرسه زمان من آوردن برای شروع دلائی گفتم خب اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مُوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمَن یکی ظلمن بود کنه امی کسی برای یتیم کار می کنه میکنه، می میکنه، چونپانی می کنه به خدمت شما کارگر برای یتیم سرارا می بنده خانه یونه درست میکنه، کنه خب کارگر میخوره دیگه مالیتی می، یکی ظلمن نمی کنه عدلن نمی قرآن رفت اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اموال خدا نجات خدا فنا رسمی دیگه مال درست می کردن جمعایی و آخون لابا متعلقین خودش رو جمع می شدن حتی نمی دادن چل بیتی اون زمان قدیم حتی بور پر خودش حرک می خود یتیم می شاره میکنه می کنه بشکا می بینید جلاشت نمی گذارن نمی گذارن و جمع میشن شدن اطرافی هم می کورن این که تلمه شد که صدقه ایگش این رسم رسمه کنار بگذارن اعتماد یتیم انسان پیش می‌کنه، زورمان نکنه. اگه کسی به خاطر خامده به خانه یتیم، شدن، حالا یکی یا مسلم باشکوهی از بزای آنها بیارم، بیشتر بیوم بگذارم، بیشتر برای دیدن آمده چون زورمان کردن اون کے لیے دیو دارا مرتب ہے یتیم ابی چارہ کی چینے دیں تو سما بکوں احتیاط کرو دربار یتیم کیا شخص خدا میگه فلم الیدین یاکلون اموالا لطاما ظلمن کہ انما اینا در شکم خود آتش جهنم را می خورند آتش ایمان یتیم فردا کیامات در صورت آتشی از شکن اینها زبان کشید چه بعد اتفاق و پس بعد در حدرث و سیتلامش پیدا و توی جهنم داخل میشه در انجام در جهنم میشه خب در این حکم چشم دستور دار که مردان هم از ماطلک الوالدان و اکربون شهم زنان هم شهم در این حکم هفتم بیان سهم برشتار زویل فروز بیان میشین خشکنی شروران این میراج نفت علم میشید. و خدا در یک کامل کاملنا در قسمتی از رکو این ورسا را نیراس را تقسیم کرده و اون تشریح و توزی هر انسانی که می میره ورسایت مطفاقه بیشکیت یکیت لغذاب من هم به اکتباب ترجمه آیات می زیاد تشریح سراجی هستو، هستو، غانی و هست و حویات میراتی هست و لغا تا غانین و مغرراتی هست این آیه که نخاندند و نمی دانند گیچ نشند فقط من به اندازه فهم آیات همون اندازه کنم می حالا این ورسه که میراث میبرن از متوقع دونو ورسه هستند زهیل کروز، او آسیب، او باد زهیل ارها. که مشخص میبرند هر چي ميما ند، مال آسیب. اونجا قانونه، آسیب، اولاد او پدر آسیب میشه او اگر این ها نباشتند همون اکبنش این ها نباشتند ابو زاده اکبنش در حتولانیش نمی کنیم حالا فرد نکنیم نام احمد آمده اینجا شما اون احمدی بیشاره نکار نکنیم او خودش یکی می احمد متوفر تو بچه احمد دختر و پسره یا تنها پسران یا تنها دختران یا دختر پسران حالا میراد اولا ہے تنها پسران دختران پسران یا تنها دختران تنها دختران یکیه، ہے یا بسران یکی ہے سران خالان اینه که اللہ سبحانه و تعالیٰ قانون اشتراک را دکھنید اگر تانه ها پسران خود این ها بشربان از سغا دا مطابیس دارمید حالا مادرشون یکیه مادرشون متو... متعدده فریقی از یک مادره درباره اولاد زرکی موش از یک مادرن این اولاد یا این اولاد احمد که متوفا هست از مادرهای متعددن دوتا پسر و دو دختر از یک مادر دو تا از مادر دیگر دو تا از دیگر لیکن درباره پدر میراثون بروند چهار تا فرزند دارا دو تا پسر دو تا دختر از چهار تا فرزند چهار فرزند در چهار تا فرزند خب اینها همه اساتید پدر که فرزندن هیچ فرتی یا یاد یک مادر یا دو تا مادر هر کنیدارا چای پدره تیگه پدر که مرد که در باب میراث برا خوهر و برادر برا اونجا قانونینه که لید زکر مثل حدر دل دو برا بر بر دو برا بر بر دو برابر بر دو برا حالا چهار تا ترزن ماند از احمد دو دختر دو تا پسر خب دو تا دختر یک پسر ایسا بیشه خل ماند بینی این ها طور تقسیم شد زوی البلود سامی خودره می برند مادران سامی خودره می برند پدران سامی خودره می برند این جلیت تکریمیتو حدیل اونسه مال را سے رسمت می بعد از این که زوی البلود خود خودره بردن یک سام مال دوتا دختر و حکم مال پسر ها می این در سورتی که دختر و پسر بیردان عددتان آق سر گذاشت ایس دکتر نداره ستا پسر دار داره از ستا خانم حلقی چیه کار نداری خب اونها مسالی سهر خود را میبرند، بعد از اینکه کسی بلفروس سهر خود را میبرن مثلا والدین هستند زن این متوفا این ها سهر خود را میبرن باقی مانده مال تعلق میگیردین ستا پسر بینی هم مسالی دستی میشه خب اگر حضرت میمیره خب پکت یک دکتری میگزانده خب یک دکتر نیستی مالگر میشه دیگر هم سامی دارد میبره مادر هم سامی دارد میبره زن هم سامی دارد زنان هم سامی میبره نفت دختری و اگر از دختر بیشتر دوتا دختری ها بیشتر دارد تو دو سیگوم مال را میبره دختر و باقی زمین پروز هم سامی خود را میبره اگر چیزی مند به اکرم میرسی حالا بیان یوسی کم اللہ وی اولاد کم تاثیه می کند خدا شما را نسبت به اولاد شما صورت اول حالت اختلاق هست یعنی دختر را کسران لذکر متلو حقیل اونسه تنها کسران که خوب بعد این که زوی کروشتن و خود را می بره اینها عصبان ما به کسرها تعلق بگیرد برای اذکر مترو سا و دخترش دختر است. خوب اگر تنها دختر ای دو این فان کنن نشان او کاسنتین اگر این اولاد متوفا فقط دختران بالای بالايه دو این بالای دو اشاره کر کہ دو هم در همین حرفه این برای قر کیو بالغه هر مبالغه هر نه اعتراض اگر دو هم دو سرس ميدارن اگر بالای از دو هم دو سرس ميدارن پر اون نتوان تامات را، فقط برای این دکترها دو باشند یا بیشتر از دو باشند، فقط برای برای تو هم دو ساله بیشتر از دو باشند هم دو ساله، دو ساله مات را که دو سه و مال را که پدر گذاشته یا مادر گذاشته راسته. خوب و این کارت واحده تنگاریه دکتریه تو پر اهل نشون نشمال به اون دکتر دالد میگیرد پدرش میگیرد یا مادرش میگیرد. خب این صورت اولاد اولاد این طور می رازم برد ارتراد اگر کسران یک کسر یا بیشتران خب مصابی سامنی برد خب اذا ها اصابان زمیل سلام خود را برد مارد دو به کسران می برا. و اگر دفتر و کسران لیت بکره مثل حضرت انسید و اگر تنها دفتران یکیه نصف مال رمی برد دوان یا دو بیشتران دو سیبرون مال رمی برد خب حالا اگر ارمت والدین مکنت هایی هر از و مادر یک شروع کرده ولی ابوی صورت اول برای ابوی متوفا برای هر یکی از آنها زود سر از آن چیکی این متوفا ترس داده به شرطی که برای این متوفا پرزندی باشد حالا یک قدری یک پرزندی خود میکنه هیچ اولاد نمارد سرمایه داره عروفی کرده یا نکرده خود میکنه خود پرزند این خانه لبو ولد رو پرزند داشته باشه به والده یک سیشون یک به پدر یک سیشون به مادر شرطی که این شخصی که پود کرده پرزند متوفا دارای ولده حالا ولدش یکیه یا بیشتره مزکره یا موننسه لفظ ولاد آنو حالا مثلا احمد بودکر یک دختری دارد یا یک پسر یا بیشتره یک دختر هر یکی از یک خب اگر نلاشت باشه پیلن یک کل نهو وردون ای سورت دو بومی احمد بود کرد هیچ شرزن نداره والدین او زنده سن ای سورت دو برد. اگر نباشد برای او ورد تو بابر سو اماواهو پسکر پیدر و مادر میراحی او میبرند برادر و خواهر هم نداشت باشند. بس تکت همی یک پرزن بوده مرد والدین امان دارد نه خودش پرزن دارد نه خوهر دارد نه برادر دارد کل میراث تعلق میگیرد به پدر امان دارد ورثهو ابواؤ لیکن اینجا مادر یک خبومن دارد باقی دو قسمت ما انمالت مکرد میراث به مادر و پدر تعلق می گی رہے یک سیخون به مادر می دو مال سیخون مالب امینه فرضی احمد نه اولاد دارد خودش و نه خوهر و برادر خب! اگر او بیشتر ها یک خاوری داشته باشد یا یک برادری باز هم پدر و مادر میراث شهیده، و یک سپون به مادر میراث، خُم اگر خواهر و برادر بیشتری دارد، بیشکنید. خواهر و برادر بیشتری دارد از یکی. به له کانالو اخبارتون، اخبارتون گفت، اگر یک خاوری داشته باشد یا یک برادری داشته باشد، برادر صورت شرطه که پدر و مادر میراث او رو می وله آزا به پدر دو سیب و م... مادر دو سیب و مادر دو سیب و مادر داری در صورتی که پکت یک خواهری یک برادری دارست خالان احمد وفاد کرده پرزن امنه داره خواهر و برادر داره دو خواهر یا دو برادر بیشتر داره انکانا له اخوتون فل امیش خدوس و مادر یک شش و فرانس تا دیگر مال پدر برسن او به برادرها هم ایچی گیر نید به قهر و برادرها هم نمی آیا این همین نمی گر. خودشان هم نمی بران. و مادر را از یک شو بیش شو خیلی کم میشه می مادر لیکن پانس تا مال پیدار پانس تا مال ایک مجرد بلالعالمین این ہے که خوب پردار این همه برای و برادر خواہر مالگی برای برادر در کی یک یا یک وہ میراث مال پیدار. مال مادر به مادری دو لیکن اگر خوهر و مرادن آج بیاد از یکی بیشتر انکانا له اخمتون جمع بیشتران تو لحاظا یک شش رنب مادر میلیش اور پانچ سا همی دیگر مانک بیلنیش زمانی که پانچ اگر زنی داشتا باستا سا هم کی مراد شمید هره زنگر زنی اگر زن هست و نیلاشیم میبره ترقیه معمول روی احمده خوب بچه نداره بچه نداره میراد و پدر و مادر فرمت بود اگر یک خاهری داشته باشد یک برادری داشته باشد به مادر یک می کیونی تو خیبون مارو اگر برادر خوارایش بیاده به مادر یک ششون میرسه انت قسمت دیگر مال پدرش میشه این هم بعد از وقیت که وقیت به آن کردنش و بعد از دین من قلب کردم اول اول تجیز و تدفیل میشه دیونش حدا میشن اگر تمام مال متوفا در برابر دین بره باید میدن بعد بسید یکیش هم میشه این ها را در می آنم بعد نیست کسی میش. من بعد وقایعیت یوسی به آواه دارم. اگر که در سکر وقایع مقدمه دل موقره، لیکن ترکیب در اداب دل موقره. اول یورو را ادامه میده. این اصلا را کنال میگیریم. چرا این همه مال اجلم کرده؟ و الان دین به درده دیگه برای ورسه اگر نمان کل مال در درابر دیونش رفتم بلند دینش آدم بلن. بعد وزیعته چرا در تقدیف اینجا اجماع امتیم به بعد وزیعت یوسی به ها آدن این رسی کرده چه او وزیعت به خاطر احتمامه وزیعت فالی بی نداره وزیعت مکی بی نداره وزیعت فالی بی منی هست که وزیعت شده بره من دیلید اون اولیاء خبرداران اگر قرآن تاکیب میکنند منباز وثیت یوشی به ها بوده این خاطر اللہ تعالی خاطر احتمال که وثیت را شما دست کم نگید وثیت را احتمال کارد وقت متوافع توثیه کرده توثیه شرع اول ادا کنید باید میراست را تختیم وثیت کرده ده میلیون لسل دارت سدها میلیون ست میریون پول داره خب اول ده میریونم میدی دیون داره دیونشه اول اول میدی دیگه تنپیب همینه که من دارم ترس میکنم بپنید دی. که بیشتر تکبر نمیکنم مرداد وقیتی یو سیده ها آده باز اللہ تعالی میگه تقسیم من کردم به پدر سام دادم به مادر سهم دادم به اولاد سام دادم و شما دیگه حضر دخالت من دارید اون عرب ها میراث روی مناقب بود گفتم اون برادر چون تصمیت انتقام بگیره لحظا اونم می دادم بچه کچکا نمی دادم زنان کسرن نمیدادم. دادم اللہ بارمی گه تحقیم من کردم آباؤکم و ابناؤکم پدران شما و بچه های شما یعنی اصول و بروع شما شما نمی کدام یکی قریب برای شما برای نپرسانی این فریزتا من, فريضة من فرد الله فرضا الله تعالی فرش کرده فریزتا من الله ویموتellt خیلی فراد الله فریزتا این فرض از طرف خدای این تکسیم لفتر شما حقا چیرا ندار ادن الله خان ح Piet الله extern Digital وحرم شما تعالی gekان ح ح sees امن حکیم و دانه تکسیم کردی شما حقا چرا ندار نما عدر حقا چیرا دار ات إرسان من بیش key رفتم من بیش key boom من برای بچه بیشتر زحمت کشیدم بدرشی ایک کاری نکرده اللہ دارم اینجا حبت چرا نداری حریزتن من اللہ خوب حالا اثرت فوت کرده زن زنی دارد زن تو حالت خالی بود بچهی دارد اگر بچه ای دارد امکان اله هون نظره دارد تو به شوهه یک چارم مال زن گیرید خلا فرقی نه احمد خود کرد زن دارد نه زنش خود سورت اول ماله مال میراث مرد حالا مرد از زن و زن از مرد میراث سو می هر یکی دو خانه پیش کرنه همه فردیه اینه که احمد زنش خود کرد زنش همه یک زن سروتمند و پولداریه حالا این زن پرزندی دارد یا ندارد اگر پرزندی دارد از احمد یا از شوهر دارایی دارا یک از احمد این پرزند یا از شوهر دیگره تو احمد یک چار و ملحب. و اگر انسان خود کرد داره پرزند نیست نه پر از احنا داره و نه از شوهری دیگه انسان بدون پرزنده نصف مال انسان را که پنجه ملیون محریه گرفتو پنجه ملیون تغادارات نصف مال انسان متوفق مالکنه اگر پرزندی داره بید چارم و اگر پرزندی نداره نخت مال ده نفر شو اگر که در ایام نامزدی هم بست ایجاب و قبول شد زوجیت تاقید بوش در ایام نامزدی هم بمیره نصف کمال شده محری که برای او تین کرده بگردن اینه محرمی گیره نصف محرمان بیو تعلق می گیره حالا بگید دیگه این چیگل دارسته اینسا محری این شوهره نصف محر مال می میشه در صورت اکو پردن دیرن است و در صورت که پردن داشته باشه یک چارو پرجاح میلیون محرش کوده یک چارو مالی گیره باقی دیگر باید او و اتعلق می گیره و والدین اتعلق می مه هم اون دیونی هست که از دیگه میراث مقدنه مردت مرد مهر زن باید اول مهر را بدن بعد به میراث هم بودن ونکو و برای شما مردان نفس آنکی هست که زنان شما میگذارند اگر برای اون زنان پرزند نباشد، چه از شما چه هیچ پرزند نداره ولد عام مزدکر موننسه و اگر باشد برای اون زنانی که مردن ولد چه از شما باشه چه از زنان بیگر تو فلکم ربو برای شما یک شارم از آن چه زنان میگذاره اینم این هم من بعد وسیعت این توسینه بگاه بعد از این که وسیعت زن را تحمیل کنند زنان را یا دینی بگردن زن ارقداش خب مرد بی میره زن ببانه مرد بچه دارد یا ندارد اگر بچه ندارد و یک چارم مال تعلق بشنی یک چارم مال تعلق به زن و اگر مرد بچه دارد چی از همین زن که در عقدش هست یا نامزدشه یا چی از دنان دیگر بچه دارد این مرد تو بزنی یک حاشیه در دهان بلشایما حاشیه حالا که برای زنی که شوهرش برات جنگاره دارا اصلا در این بلد نیست یه چارو و برای اون زنام حسیل چهارم از آن چه شما مردان می اگر نباسد برای شما مردان ولد پس اگر باسد برای شما ولد پس به روزن یک هشتون گیر میرد از آن شما درد می اینم بعد از رفیتی که شما وشید کردید و بعد از دیون شما اول دیون داده می بعد رفیتت میشه روشه بعد می راست میشه می شود از آنچه یک هشتم گیردید امروز این آیات را مردم توجه خوب رعایت هر انسان وقتی به میشه بعد از مرد رسید نیره از تخصیم میشه هر داده و حالا شخصی می والدینش زندنی است، فدای زندنی است چه دشمن زندنی است، بچه هم ندارد. این رضو رمیگان کالا، چی خلال میگن کالا؟ مرد میگن و به اون زن میگن که نه والدینش دنده است، هنگام آن برادر دارد. دارد. خواهر و برادر بسنو هستا خواهر و برادر از مادر دارت که درست کسی دیگه این خواهر و برادر هارا خیفی و اخیافی نید او خواهر و برادر اینی دارت که از پدر و مادر یکی ها این هارا اینی نید خواهر و برادر دارات علی از این غلام برادر اینی که از مادر و پیدر اشتار و برادر اینی دارا که برادر دار مادر خدا خیفی غلام الله مال و سربتش تعلق میگیرن به خواهر و برادرای اینیش اون اینیاره چی؟ اگر خیفی میداشت که ندار تنها از در امادهش تو ای غذا به اونغایی چی شب گیره اگر ازیدی بیشتر باشه و اگر یکی میگود یک ششون کی رشمی آمد و اگر اگر دیکی بیشتر میگودن یک شکن بین آنها موسکردی خواهر و برادرهای اینی اگر نمی داشت اینی می داشت اینی در صورتی که خوهر و برادرهای اینی داشت باشت بھی اینی ها گیر نمیاد. داشت فقط اینی ها می داشت ها محروم اگر خیفی می داشت اینجا بحثی برادر خواران خیفی هست که از مادر حالا فرض می کردین که یک خواهری یک برادر اسو. خیفی از مادر می داشت پر اشکر شدی تو اونجا میراث یک سشرم مال با اگر یک خواهری یک برادر می خیفی از مادر امی بود باقی رو خواهر برادر آئے اے اینی می گوند اگر اینی نداشت ایلی نمید باحت خواهر و زرادرهای اینی اینی و ایلی در آخر صورت اینجا باحت خواهر و زرادرهای خیفی هست اگر یکیه اگر باشد رجول که میراث کرده شده هست یورت یورت که پتی برای رجول او این برای اطول که خارو برادر ندارد، که پدر و مادر ندارد، اولاد ندارد. رجلی که میراث کرده شده است، کالاهاست. یادم که میراث کرده شده است، دور است. دورت اینه که میراث بوده است. خودش مورخ شده، وارث برای او داشته است. کالاهاست، کالا یعنی اولادم ندارد، والدین هم ندارد. وَلَهُ أَخُونَ بَرَا این شَخْتِ کَلَالَا یا زن کَلَالَا یک برادری هست یا یک خواهری خیفی انجام من الام باقیها گفتا ابن عباب گفتا تو پس برائی هر یک خواهر خیفی ہے یا یک برادر خیفی ہے یک ششور یک ششور یک خواهری دارت یک ششورورنی براد یک برادری دارت خیفی یک ششورورنی برادت و اگر این خواهر و برادر آئی خیفی بیشوراً عزیب مثلاً دو تا برادر خیفی ہیں دو تا خواهر خیفی ہیں یا اگ خواهر و برادر خیفی شجار تدارا تو فهم شرقاؤ فید ثلوس خیمه آنها شریک میشن در یک شیفو برادر سهمی دیتے بخواهر و برادر خیفی کے عجمہ دیتے بعد از رسیتی که توسیه شده آنها یہ بعد از رسیتی او غیر مضارن غیر زرر دهنده باشند کسی را از ورسان تگه لحاظت این نیراست اللہ تعالی میگه غیر مضارن در حالی که غیر زرر دهنده باشند، این هم وفیت من اللہ تلسیه از خدا شد و الله علیم و حلیم اللہ تعالی دانا هست در ندادن و در دادن بکی میده هد بکی نمیده هم یانه یعنی خواهر و برادر خیفی که از مادران با موجودگی خواهر و برادران اینی و اینی محروم نمیشه میراث خود را چه خدایی خواهر و برادر خیفی میراث میبره اگر چه خواهر و برادران عینی هم داشت باشند مثلا خوهر و برادر خیلپی میراث خود رابورد یکیه یک ششون میبره خوهر یا برادره اگر آتی که بیشتران یک شیبون بین آنها تحصیم میشه باقی خوهران برادران اینی میبرن لیت ذکر مثل حفظنون سیر حفظن جغانون خوهر اینی تو خوهر اینی یک برادر اینی دیشتا در آخر سور پر ششمید لیکن در موجودگی قہاراں عینی و علی در صورت قہاراں عینی موجودن و برادران عینی موجودن برادران علی معلوم لے کہ و برادران خیفی اکل معلوم مسند این تقسیم رب العالمین خلاصہ کرتی ہے امین ہے غلام اللہ خلاصہ کرتی ہے برادر ایلی دارا فردن بکنیم که خیفی ہم داشتا باشا تنهاد مواده اشتر بار اونها سامنی بارا اس سامنی اونها یہ کیه یک شمی بارے دو تان دو بیشتر یک شیبو بارا باقی مانده نیرازش مال خاہر و برادران اینی ہے ها. ایلی هارن در صورتی که اینی باشا ایلی دیمی دیم دن خدا خدا خدایی لیکن تیس صورت کلالا ہمی نبولی خیفی محروم ہوشتا اگر اینی مدارت، ایلی دارت بس ایلی ها همی دارت پر جن کے غرام اللہ از مادر اشتر آئے خواہر و برادر خیفی ہم دارت خواہر و برادر ایلی هم دارت خوب خیفی ہاں سال خود رمی برند با ما ایمان با ایلی ها منیشتا لیتکرمی تل حضر اونسی اینی نا جارت دید ساکر خدای انجا شکر دھاملیت قائل شده برای خاہر و برادر خیفی بھی صورت محروم نہیں شی اینی باسن شی ایلی باسن اینی و ایلی دوتا باسن خیفی محروم نہیں شی لیکن در موجودگی خوهر و برادر اینی خوهر و برادر اینی محرومه ایسی چیزی دیگه اونها اشبه کشم نا زبیل کروز ہے زبیل کروز سرم شرط کرچه بلک حدود اللہ این ها و قانون الهیت برک اطاعت کرد و رسولت اللہ و رسولت را در این حدود مقررات داخل می‌کنم خدا نهارا در باقه جاری اذیران نه را آمیشیم من و این خود اذیم است شما ادودیلای رعایت کنید حق چرا کسی نه خواهر و برادر خیفی میراستی می بران خواهر و برادر الی محرمان شما هک چرا نه ادودیلای رعایت و من یا کل الله براسوده تقیف و خربی هر کنا فرمانی کن خدا و رسول اسلام و تجاوز کرد از حدود الهی یعنی اترا اعتقاد بقانون الهی ندارد تو خدا اولا داخل مخلصوی جهنم برای حوش و برای او اذار خیلی محیم فیلی تحديد بزرگیه شما حدود و مغررات من رعایت مکنگی اللہ تعالی مجید اذار خالد هست اگر اعتقاد بغانون خدا ندارد که کافر ہے و کافر ہمیشه کیونکہ ہم و اگر اعتقاد دارد تو عمل نمی کنر تو لحاظا حلان باورت میرے اگر این بلوشاہ تا اعتقاد ہم ندارد بغض افلس ستاغن نمیدی خصوصا به خوهر و برادر خیفی که اصلا حساب خدا خیفی را حساب کرده این را در موجودگی اینی چیز حساب نکرده حکم هشتون در حکم هشتون بود در حکم هشتون اللہ تبحانه و تعالی میگه زنان میراث هم بیدی به بی. بی مردان هم نیراث بیدی بی. اگر زنان یا مردان خیانت کردن حکم من خدا را برانها هم نافذ میراث نیراث هم بیدی غانون منه و اگر زنان تجاوز کردن و رفتن میراث کردن دو نوز بله سناه کردن حکم من بر انسان اول که حکم رجم و حکم جلد آمده بود زنان بدکار زندان کنید تا بمیدن یا برای آنها خدا حکم دازه کنند این خاطر میگن الان زندان نیست الان هم از دو کار خالی نیست عروسی کرده رجمش میکنید و اگر نکرده ست ضربش اللهش میکنید آن زنانی که مرتکب پاهیش شدن از زنان شما شابه سوم از باب اصلاح ازواج است فقط شد علیه این اربعه تن کنید بر اناث چهار از خودشان از خود تالین یعنی مسلمان عاقل بالغ مرد در باب زنا گواهی در زن اعتبار ند در باب زنا جواهی مرد است هم مسلمان باشن، هم آقل باشن، هم بالغ باشن پس اگه این چهار مرد روایی زنای زنان را دادن تو پس حکم به حکم حاکم زندان کنی الان مولانا حسین ایس سیاستن میگه لیکن بعضی میگن نه اون زندان میگه مولانا میگه اون همه آیات را توجیه میکنن میگه میکن شما زندانش کنید سیاستن در خانقا تا اینکه موت کار آنها را تمام بکنن حتی یا توفا الموت یا کرار دیدن خدا برای آنها راه دیگر که پیغمبر علیہ السلام وقتی دشتور جلب آمد و رجم آمد هر موت که بیائی این دشتور را از من بگیری اللہ تعالی برای آنها راه پیدا کرده ازدواج کردن دنار کردن رجم شروع کنید شارگوال کساب شروع اگر استداد نکردن تو الله و کل واحد من خمام نیات جلد الله من این وبعد می گرد تعمیم بعد تشخیص اندرجام کرد. حالا اون دو مر که باهان نوذ بالله جزا پس خوردن برای اینها اذیت کنی دیو امام ابو حنیفه حکم سختی برای اینها قرمید این هر زیر دیوالی دی بی دی اندازیت مردن فا بغاو مردن نجایت باکنی گینام بولی در اصوالات دیوالی دیوالی دیوالی در هر ها این هر ازیت و آثار تونی باکنی در و تکیب شماریات نشت و از این لذان میراه و مرد انهایی که یادیانها این باحث شدن در مان با مان از شما تو عزیت و آزار کنیدان آن عزیت و اجراء حجود است خابل از ازدوازین عمل را مرتکب شدن در میشه اللہ مسئل دن باق رنگ اگر توبه کردم بعد عدید آن رسانی و اصطلاح کردم در آئین در شماز آنها یعنی بعد از دیدار رسانی دیگر بعد از تعدید کردن آنها ملامت شنن اِنَّ توبه توبه وزیری به عهده خداست تفضلان تغییرش توبه به عهده خداست تفضلان برای اورغوناگرانی که عمل سو گناه صغیره یا کبیره را انجام میدادند به چه حالت نه احماقات قاعده اعتراضی نیست هر گناه جهالت هر گناه جهالت به چه به چه از احماقات اینا من را انجام میدن توبه یتوبونه دیگر استمرال در گناه ندارن توبه میکنن از قریب قریب قبل از مر بلکه مرد که توبه توبه اشتری رفت نمیشن من قریب یعنی قبل از حضور مرد این قریبه و اولایی که این انسان ها یتوب الله علیه خدا برا نارمش میکنن توبه شرایطشتر برا نگرامی سه هستن یا چار اگه او بیوال باشن انسان در عمل دشت گذاشتا نادم بیشه در حال حاضر و را تھرک بیده بران عملی که انجام داده نادم و پشیمان بیشه در حال حاضر تھرک بیده و تحصیم قطعی بگیرد که من دو مرتبه این عمل دشت را را انجام نمی ده اگر حذیه بند ای را انجازار کرده ما کسی را طلب کرده در ارج کسی هاروویزی بهطر را از او مادررت خواهی. اون گناایی که حزی او طلب شده و او اددا کردی، اگر نوز بیاللہ عملی دیتی دیئے جو انجام کریستے تو نظامت و چوبہ و اطمیم غطئی برای آئندہ ولی که سرکاری کنن خود رکھتی نوز بیاللہ نرے بگر را که من آخر کرا طلب کردن نوز بیاللہ تو یا باغنی تو این چیزی کی نمی دنکی برین ادائی حق کنن ما زرک اون دیگر همون نگامت و پشیمانی بین خدا دیگر مالی حده دی مالی کسی رضای کرده یا ازو حد پہلی بھی گیره به اسطلاح مادرت خواهی بکنه اور بگه حد خود را مواب کن بر آبروی کسی کسی را آبرویت زد چرده زده زرب چرده حد پیڑی گوکتے غشی گوکتے فرشی داده نا سگای دا گوکتے ازو مادرت خواهی بکنه ثم يتوبون من قريب الفاولاء يتوبوا الله عليهم ولينا خضر رجوع ميكنا وكان الله عليما حكيما الله تعالى تعناها في شكة السليم قد توب کرده حكيما في فوراً الله تعالى رسوة نمي كنات مهلة توبا ميلا ونس تديريش التوبة لاتت التوبة براي عن هايك امالي توبي كنات يعملون السياد حمال دیش انجام میدن حتا ایدار هزر احدهم الموت تا اینکی برای یکی ازان هم مرد میاید یعنی تا آمدن ملک الموت اینها از زنها دست کردن نیستن توبه نمی کنن قال الان که ملک الموت را دیده میگه اینی توب تل من الان توبه دارم از زنهایی سدار فکر شرک باشد لعظا الله تعالی میگه از زنها تو و بزیرو فیال و انا که کی در حال کی قافرن. در حال بعد از توب مر در حال توب و تا آمدن مرگ از توبه من نہیں مرگ آمد توبه میکرد بازم لے تو ایمان و تو یاس، قبولش نباش. ملک الموت که آمده پاک و شروع کرده و برای متقابل تو به اون لحظه یک انسانی یک انسانی تو ایمان بیاره. توبه و ایمان یا ناومی از زندگی ناامیدی. بید دکترها گفتن که کلیه کارده می کنند مرض شرطان هم گرفتش شدید تمام بدنش پلس کرده ای از زندگی ناامید شده حالان ایمان بیارد هم قبوله توبه کند هم قبوله ایمان باس همونه که عذاب الهی پرشتر تبز روح آمده گرد می نفس نفسش هم آمده اول توبه کنه دا از کفر یا توبه کنه دا از گنافزی روکه میشه توبه و ایمان یا غبوله نباس و این همون ایمان باسته که موقع پرشمی آنی ازا حضره الموت یعنی معمول موت می آنی الان میگه من توبه میکنم و برای آنهای که میمیرن دادالک کافره خدا اعتات نالو مدا بن علی و اصاب و در قدیم در و در در ها. برادر مرد زن برادر میناس. اگر خودش نگیره اللہ تعالیٰ در این حکم انہوں بیان می کنا که مان میراز میشه زن میراز نمیشه ہو اگر بخشی زن برادر متوفای شما شما را آغد کرن سلیمیز نشت وائچ بار کنید کہ حکم باید منع بگیری نشار بستلائی ما نوچن نشار گیری یہ جا برنیز زن میرا سننے مجھے و اگر زن خاضر نسل با اولیاء سوحر متوفا اس دواز سنن ہیچ کسی بردن اجبار میں مکنے بکنے ہم محر سبایت میں در ہم میرا سبایت میں در وہاں ہیچ کسی با اولیاء سوحر متوفا اس دواز میں کنک کسی عمر بجھے یا ایہوالذین آمنوا لا اہلو لکم ان ترسوا نشاع خلال نیست بناید شما که شما میراس بگیرید زن را جبرنگ، خرخن، خان راضیه با شوهر، با برادر شوهر متوفا، با امو شوهر متوفا، با کسی دیگر ازدواس کنو مسئله نیست ولی تعدلو هنه، معنی نوازید این زنان را نتیجه اینه شما ببرید بعض انصراتی دانها دادید این بیشاره را نمیگو در خوب وقتی نیخوایی بری دیگه جا ازدواج کنی این مغازه که میراث بر بی پخه دی نمیگو در این ازدواج کنی بیشاره بر تمام محری که گرفت در شوهر متوفا یا میراثی برد در شوهر متوفا به شما بده باب شما رازی میشه بخه ظالمی نکنی مانه نماشی این زنان و دیفترانه از ازدواج نتیجه تنینه که شما برد آرید و ببرید و آنچرا که شما یا اولیاء شما کی متوفا با سردود آدی خاطر لاحیاتین بپاشت مبینا اگر امور تکرس و دیت پاشت مبینای بدخلتی و ناپرمانی شوہر مرسیده او ایتا تا شوہر میں نیت دید او مسئلے قول کمی آیا نافرمان شوهره اطاعت شوهر نمیکنه. حالا شما از او چیزی بگیری بی مسئله نیست و او از شوهر قلع کنید این ایلا این یادین مبینته بعد بدخلکی و نافرمانی شوهر مخصوله که شوهر زنده را این نافرمانی کرد و اطاعت نکرد حالان اگر شما از او بعض ما آفیتون را بگیرید و اولا طلاق بده شوه که همو صورت خون هست یا طلاق بالمال این استشنان دیگه زن که میراد شکریفتیو همه قراش کرده یا با مثلا بد اخلاقی میکنه در, در سراش حریقه و دیگر ورستار حق نمیده یک هشتوم خرام مال روی حد قدمت شمال دیگران همه رسید داده صورت شما تمره رانون و مقررات با او برخورد کن حسن خود رو بگید خان او یک هشتوم پرسن یک چارم او دیگران رو حق نمیده توی خرام خود شما برنو تنگ تو بیارید تو حق حقوق فرمان حق را بده تو بسلی نید این طور پر زلمنی حالا یہ چکچی را به دور و بری شرح نمی دیدار نا بارادر این نا باردن دیرا چون من اینجا تو زندگی کردار تو, تو یہ تشکم اصطرح را حد داری خوبات باردنان معاشرت کلید بخوبی مردم خوشکلکی و خبرگیوی نان و لبدا و لباس و اگر شما زنی را ناپسا دانش کنید طبعا به احتفای به شریعت قرآن میگه پس برو شبر کنید زنی گرفتی داره برزن شدید یا داره برزن نشدید یا داره برزن نشدید شما ارتباطی در با وصلت انسان ارتباط برخراج بکنید با فامیل زنید و این زن را شما طبعا طبیعت شما پسند میدید یا بد اخلاقی در ثبيت اون می‌دی رو. شما پسندش نداری. تو پس دیروز کنار میگه کامل کنید پسند تکرارش کرد. امکان دارد که شما نپسند داشته باشی تا بگنی و خدا برای شما در آخری گذاشته باشد. آخری کثیف گذاشته باشد. شاید زمین زنی که شما تا پسند کنید خدا شما را پررنگ کالی خواهد. یا به خاطره ای اون نسبتی که شما از راسته درکران کردید از اون نسبت شما به خیری درست از خبر کنید وکرده باشد خودا دران که شما قسم دشنه دارید خیری کسیرید این حکم هشتور دهومید اگر شما قسمید این زرن تلاح دید نینی با زندگی کنید تبییتی شما پس نمی کند به سخن چغل اسلام یکی گفته که من تا که همه شب روخ من به دیوار باشه و شما می خواهید گفت جهر را ویل کنی. هر چی بهش به اشتادید ماهر خرد نفقه همه را برای اون بگذارید پشنگیرید ویلش بکنید لیکن خب و حساب از اون نگید و اگر اراده کردید که اقتدار دال زوج کنین مکان سو. این زن را بگذارید به زنی دیگر بگیری. در حالی که شما به این زن یکی از این زنان هم مالک حالی دادهیم. پنجاه صد میلیون یک سرای درکیار و سخت نامگذاری برای او. مهر او یک سرایه. حالا نه نه دوست داری تیرید پیش او. او نمیتونه طلاق بدهی کسرایی بدست دادی. یکا پارتبان 70 ملیونی بیتیار کردی تو سنت کردی لحاظه اللہ نگه شما میخواستنی دیگر و این کنی کنید لحاظه و بیوی یک یک خرمنی حالا صورت خراد یا حالا پر دادی ببینید از جن نگیرید فلا تا شما نگیری از این چیزی را چرا؟ شما بناباس این زنان بیچاره در تنگمه و پشار خود شما دوتش ندارید بو بیچاره برای اکیشوارا در آبش بگیره آمادگی دارد لیکی شما با او محبت ندارید فلا تا خدومن حدو چیفی نگیرید از اون زنانی که شما خودش شما میخواید که را غیل کنید از سبدان دوست بین مرکان و بیان خینتاری داغی فلاسا خودون من خود شما نگیرید از اون زن هیت چیز از اون مال هیچی چیزی را که این گره شما مال شما تبلیغات نکنید که این زن لیاقت زندگی ندارد ارزش زندگی ندارد یک تو رکم بیشت را رمیزنید و گناه. بنات عشقارد تو خود بگو دل, دل نداری. و گرفتن منه اینه که تهمتش میزنی اتا خدونه او, او, او شما این مال را میگیری در حالی که بختان بدتاری و را رو نافرمانی را میزنی شما میگیم زن ارزش زندگی نداره. بختانم یعنی در حالی که شما بایدینی تهمت میزنی دورا تهمت نافرمانی تهمت بدکاری، تهمت زشکوی و در حالی که اسم مبینا، شما گناهگاری ظالمی که مالی که بدون به خاطر از زم می شود مال اسم مدینه شما گناهگاری از زمی سر آخرین حد تنگش کردی و به فشارش داشتی تو امان هم دار و شما را از خود را از شما جدا کردی ابات قرآن افیم و شان بشدان ایل آره میکنه مدین که اخمار حاجی آغایی از روزی خیلی تمایل داشتی برای گرفتنش. انا و یک لحظه که هم دوباره چه برا مسلمونی و کیم بتوان خودونه خود شما میگیریدین مال راز مزدان حالا که وقت آباد باضتوم یلا باضن باض شما به باضی و خیدایی شما نبوتی دیگر شدهایی دی محرم راقی ایک دیگر شدهی تلح ذاتی ادوداشتی و تلح ذاتی دارتی امروز بیچار را فرلاف کردید که کم مالا بگیرید هم ویڑی شکن خلند رو بیچارم ہوگئی راقی شد شمارا شوحر تذیرو مقصد اسی نمود که بعد از ده تا شمارا بیلکن و بین حدث و شمارا دونوان شوحر انتخاب کر که تا زندی تو داری وو داری وهم ببزران بار کتنا منکم نساء الغلیظہ وہ زنان گرفتار شما یک سے ایک بسیار یعنی نکاح دائمی اسی غیر تو بچه سبب میں اس برو یہ کہ همون ہموں عقد دائمی ہے عہد اخوت زندگی دار شما زندگی انا نمی خواهی بین بیچارہ ننگاہ داری کنی میل تاری خیوزشی خانمیں جدیتر و مدل بالاتری و بگیری که چی دادی ہے تو پاس نہیں دی بغدار دی سراز آ دی، پھول دادی، پھلا دادی، لباس دادی، اتاس خانہ دادی ہر سی دادی بغدار بریش اور زنی دیگر بھی گی کنی بیچارہ را آزا دی انا نمی خواهی بیچارہ مالک اتلاح او بیچارہ یا بدون شوهر می مانه آخریت کسی دیگر دو سمان پیدا می شما مال می و چلاق می دی، مانشینه که انزال قابلی پیم بگی نیست این تحمد را درمی خود اتنی مقادر را لگا داری کن چلا مالا دو پس می گی تو حاضر تو شاهمت چیز را بگیردی تو و چلاق می این چرا شما این زمان رفیق بودید شما بی ایک دیگر رسولید اکوه اللہ تعالی میگه شما اجازه دارید که این زند را ثلاغ بدید و همه چیز که دو دارید اینی دادرم ام بی شما اید دادم نیکن بیدیدی این سنانی را که نکاحشون با حرامه هر نداری نکاح یکی آمده همینجا یه روزی به مولای گفته برای شما بزغاله <سؤال> شاقی هم آورده گفته نمیدانم داند خاهر زادش بوده برادر زادش بوده گفته که من مل برو داره اونو من مل برو مولا گفته بابا تو از کجا میگی تو دیوانه؟ تو مجمونی؟ تو شلمان؟ تو چه بنایی هست؟ خارجادہ تیری ترا تو تمہیں الورا داری یا برادر زادہ داری این سے اللہ تعالی زنی یا کرده در آراب ها این نکارا هم نکاهی مهد میدید اون انسانای که تبییتی سالم داشتا انسانا نمیدید پیدر مرده یا پیدر طلاب داده حالا همون سالی در رئیم بمیره نیسی دید که به ما بلوشا ماتوری اللہ تعالی میدید زنی را تو پیدر اشمان نکاه کردو طلاب داد منو هم کورا درست نزد اشمان همهن بلوشا مطالعه پدر را چه پدر با اون ارتباط یا نشده؟ به سر دری بزنیم پدر پدر مورد دانشمان بود، پدر تازه رفته دختری را ازدواج کردیم. مور، حالا پسرش تم برای ازدواج، الله تعالی می‌داند. بوداشته خبر از اصلاحات کردی تو نبوداشته. الان حقا نزاری که با راه راحت و با ترین نقاط و که عرام همینه نقاط بد می رفتن نقاط مخصد می رفتن و اگر بعد چه پیدا می شد را منقوط و مببوط هم می رفتن اللح صالح می گیر به حکم یاد صحو نقاط نکنیدون زنانی را تو خدران شما پدر نقاط کرده یا چیز پیروک نکات کن من خویه فیروش ماه یا من خویه بابا بزرگ ماه اگه نداریم من نتایجی این لحظه سرنظر ما گرو نتایجی بوده استن این نه کار فاحشه تن این یک سخنی اقلام جای که قدرت نشسته یا جردش نشسته جردت نشسته تو میبیشین خیلیفش ده و نقطا شخن نفرطانیز ارفان و سا سبیلا و در تین راهی جای که قدرت نشسته و جای مادرت بوده دیگه مغانه مادرت بوده خالان تو میرید نکاح می کنی؟ یعنی نکاح هم قایشان است سخن مقرطانیز است خرفاً و ساست و بدترین رایی که من توهی فدر را یا من توهی بابا بزرگ را تو بیلی نکاح کنید خرمت علیکم امهاتكم مادران شما بر شما مادر مادر مادر بانلوک بیشترا مادر بجورد مادر بجورد امین هر اممهات بیشتر و بناتکم دختران شما مناد دختر دختر هم دختر شدیشت و اخباتکم و خاهران شما ار نوع خاهر اینی ایفیسیتی اماتکم اممه عم های شما خاهر خالاتکم خوهر من خالها اما چه اما چه اینیه چه, اینیه چه خیفیه خوهر کدر اینیه اینیه خیفیه این همه اما خوهران ما, ما در اما منتو اینیه اینیه اینیه خیفیه همه خالات گفت بشه و بنات الاخر برادر زاده هر نو برادرزاده برادرزاده برادر زاده برادر عینیه برادرزاده حقیقی برادر زاده شنتور وبنات کلو خواهر زاده خواهر نیوا بسد نیوا صد هر نو با وفعون عن بنات الأخت مهتمين وامهاتكم التي أرضاء لكم واما درانك سماء رشيط دادرين واخباتكم من الرضاء وخاهران رزائي لانانك سماء رشيط دادن ونهارا مادر رزائي إذن خاهروا برادر رزائي وامهات شما با زنی ازدواج کردی دختری ازدواج کردی آرام مادرشم بیرد ازدواج سنین حرام و امهات و مسائل و ربائبکم دو شروع به ماه که شما زنی را نگاه کردی مادرش با شما حرام چه با این شما ندی سوید یا نسوید و سو حرام دی و امهاتن استادت و رباي بکم في من شما زن حالا شما با دختر او زن دختری دار شما با دختر او استواج کردید اینو میگر ربائه لیکن این ربائه ربیوه از اون زنیه که شما با اون زن نزدید شده حالا کش دوید زنی دیوه ایرا کرد نزدیکی نکرد و طلاق کردی حالا دخترش هم نمی‌تونه این سرا واسه زن بیوهی دختر داشت شما این زن بیورا نکا کار کردی نزدیک نکنه شده طلاقش حالا دخترش هم نمی‌تونه اگر زن بیورا آن نکات کردید و نزدیک شدید با او حالا دوختارش بر شما حرامه. چه در خدمتی این زن بوده یا نه؟ و به اختلاف لوته رباي پیش آمد. ربايی شما، اون ربايی که پیچویی کن در خدمت شما است. این کل اتفاقی. اگر چه در خدمت نباشد، پیش از دیگر باشد، شما اطلاع را نمی دیدی. از اون که شما انها دخول کردی مادر مادرش دخول نکردی گریب نکاہ کردی چلاق دادی از دختر دی. اگر شما دخول نکردی کردی تو پناتنا آهکو گناہی نیست که با دختر شای کردی تیدی کردی تو ما کردی که دادک حرام حرامی شر زمانی که با مادرش نتیجی بکنی اگر نکاح کردید و نتیجی نکردید حالا این رذیبیت او به اسما حرام نمیشه و هلائلو ابنائكم الَّذین من اصلابكم و سنان کسران شما اون کسرانی که افتمر اسما صد اینجا خاطرین اگر کسیر شما کسیر افتر شر بکتر شرش به اسما حرام نمیشه کسی که از جمری شما هست خلا زنی او حرامی چی با او کی کرده با سریع نکرده با سریع نکرده با سریع فحلائل داماد کردی دار پدر برای سر و هلائر ابنائکو زنان کسران شما که اون کسران کمر شما باشه و اینچه همچنه حرامه که شما جمع بکنید بین دو خواهر نسبن یا رزاقان الا ما کت سلفان در قدشت در دو تا دو خواهر را در یک زمان نتا کردن حکر یکی بمیده یکی را طلاق بودی دیگری را میتوارنی خواهر بعد از اگر اگر هم یہ تا این نشده با هم مثلا برادر با امت یا خارزاده را با خالیس ام بلکنه اگر خاله از خارزاده را سکتی اگر امت در عبد شما از کارم برادرزاده او را هم نمیتونی نکاح این اللہ قان غفور رحیم اگر در دو شما دوتا خار مرتبی یا دوتا خار وزر حالا دوتا از یک مادر اسکیل بخورن یکی نمیتونی نمیتونی نکاح اینه خواهر رضایی دو دکتران که دارو مادرشون جدا جدایه میران یک زن شید مکنان حالا اینه دو خواهر رضایی کسی نمیتونینی حرب سارا عدد کنن در یک زمان ایکی بعد حفیقه نمیتونی در یک زمان نمیتونی و اون زنانی که شوهر داران هم در سما حرام نکار زنی شوهر داران کسی بیگه بره هم نتاشنی. این نکاح حرام حساس ملکب نمیشه در تمام این موارد عرض مناکب نمیشه چمام هم میشه اصلا این عرام محرمات اگر کسی بکنه عرض مناکب نمیشه چون محرمات حالا زنی شوهری دارد شوهر را دوست نداره بره با شوهری دیگر ازدواج کنه اصلا عرضش مناکب نمیشه عرام و من عقد کردن نفت عقد کنیز اگر نفعنی گردنش می سهی بل محسنات من انسان مجا دیگر عقد نمی شه زنانی که شوهر دارم محسنات به مانای متعدد نیگیت محسنات من زنانی شوهر دارم محسنات نیگیت ایلا ما ملتت ایمان کن مگر انزانی که مالک شدن ایمان شدن یعنی در دمانی صدر اسلام جهاز و جنان از اسلام افیس سلام به کنیز در دارو الحرب شوهر دارد لیکن انا سمجیب دارو الاسلام آوردی دیگی انها چون از آن حد دیگی دارو الاسلام آمدن مسلمان هم که نشن برای سمان حلال هم اون شوهر دارو الحربی اعتبار نبیس این جن سمجیب اگر مسلمان سلیه نکاح سلطوری دکه کنیزی دیگری یه هشت شما می توانید بعد است که برای رحمی قدید که الان در دنیا نیست کسیده زنان را اخیر میکردن کرده جمعی آمدن به عنوان کنیز الان جا در دارال حرب در دارال خوب شوهر دارد چون آمدن به دارال اسلام دکه نکاح این ها غد شده شما می زنان را به کنیزن آغاد کنید و یا کنیزی دیگرانا بیزنی دیگران نکاشتن کنید از این زنان اونجا شوهر دارن چون دیگر اسلام آمده این نکاح حد شده زنان شوهر دار حراما سیما نکاشتن کنید فا المحطنات من المشان اون زنان شوهر دار را محطنات کنید ایلا ما ملکت ایمان کن مگر آنهایتی مالیتا ایمان شما کتاب الله علیکم اونه خود مطرکه فرق کرده بر شما خدا این الله فکر این احکامات خدا بر شما خلاصه این زنان شرامن با اخلاق داوانه یعنی الحمدلله